درود خدمت بینندگان گرامی و باسپاس از مسئولین و مجریان گرامی تلویزیون گفتار لیستوی کم خودم رو درباره کسری شروع می کنم ما در بخش به اینجا رسیدیم که پایه مبارزات کسری مبارزات اجتماعی مبارزات سیاسی حتی مبارزات اقتصادی مبارزات نظامی خواهیم دید افسران ما کتابی نمشه در باری نظامیان نوشته کسی در تمام جوانه به مملکت مراحل مملکت داشت بررسی میکرد انتقاد میکرد در این موقع ما گفتیم که پاگه مبارزاتش سه عامل بود اخلاق گرایی بود خردگرایی بود و وحدتگرایی بود خب. خب نسید که کسری شروع بکنه به اصلاح کرائیش در رای به شغلی که عبارت می وکالت دعاوی دفتر خودش رو آم گذاشته بود نبسته بود وقتی دعوتش کردن به عدلیه دفترش رو از بین نبرد سپور دست یکی دیگه که موجود بود ولی باید مجبز میگرفت. و چون کس با در بار و در افتاده بود هیچ از مجبز نمیداد تا بالاخره در تاریخ 1311 وقتی داور رفت دنبال مسئله نفتی که پیش آمده بود معاون او بهرامی که با کسبی نزدیکتر بود مجوز وکالت را به او صادر کرد و کارش رو شروع کرد هم کار معیشتیش رو شروع کرد و هم کارهای مبارزاتیشرو انجام داد شروع کرد در از این تاریخ به بعد از یک طرف نشیده پیمان رو می نویسه و در جای جای این نشیده به مطالبی می پردازه مطالب ادبی، مطالب تاریخی، مطالب اجتماعی، مطالب دینی، مطالب انتقادی و از سوی دیگه کتاب ها رو می نویسه می بیرون منتشر می کنه نمی همزمان با که سال 1311 هستیم همزمان با شروع نشدگی ماهانه پیمان کتاب آئین رو نیز شروع کرد و نوشت. ما بررسی این مسائل ما متوجه میشیم که در این تاریخ کستگی در بستر اختیار دین اسلام بود و مذهب هر کردم بر بخش گذاشته به مقدسین شیعه احترام کامل خواهله اسلام رو احترام میزاره پیغمبر رو احترام میزاره علی امام اول شیعیان رو با احترام یاد میکنه من در اینجا آنچه که در مطالبی در کنار نشیعه پیمان مطرح شده در اینجا اشاره میکنم کنم جسدلی می به خرد که اشاره کردیم پیغمبران افرادی هستند که صاحب خردند و به همین دلیل از جانب خداوند معمور اصلاح جامعه هستند. ما نگیدیم در این تاریخ به پیغمبر هم به همون نوع که مسلمانان می تعریف میکنه. در جای دیگر می که پیغمبران برگزیدگان خدا هستند و قابل احترام پیمانه در نشه پیمان نطرح کرده یه جای دیگه جایی تحدثیف در این تاریخ به مقام زن از زن اصلا اه اه اه حقوقی غاید نیست حقوق اجتماعی غاید نیست حقوق برابری غاید نیست دقیقاً به همون تعریفی که مسلمانان درباره زن میکنند و همون تعریفی که قرآن در باری زن میکنه و همون تعریفی که ملایان در مورد زن میکنه، کند من خواهم رسید در باری زن هم همین نظرات رو داره در همین روز در مورد جاب هم همان را گفته که اسلام میگوید به قرآن معتقد است کسری ما در کتاب های آیده خواهیم دید. در کتاب در پیرامون اسلام خواهیم دید که معتقده که قرآن نوشته خدا نیست ولی در اینجا قرآن را مقدس میدونه به محسومین شیعه معتقده تک تک امامان رو با احترام یاد میکنه به علی اعتقاد داشت و از علی به با خیلی احترام سخن میگفت البته و دین معتقد بود می نبیشه که نخستین بنیاد زندگی دین است منظور به دین اسلام است و در آین هم اون اشاره کرده که من از آن خواهم رسید بنابراین اینجا پس از این که راجب اقایدش در مورد نشریه پیمان اشارات کوچکی کردن اولین کتابی که در سال 1311 بعد از شروع کردن بعد از بیرون از عدلیه و شروع کردن حرفه معیشتی خودش وکالتش این کتاب رو نوشته. ببینیم کسوی در مورد در اون تاریخ افکارش در مورد اجتماع و اصلاحات چی بود؟ این کتاب دو بخش داره. بخش نخست شامل 18 گفتار و بخش دوم از 20 گفتار تشکیل شده. تالیف در یکی از مهمترین دوران تاریخ ایران و جهان انجام گرفته. راست کردم 1311 تا 1320 که برابر میشه 1933 تا 1934 میلادی دو تا مرحله است در اینجا باید بررسی کنیم در این تاریخ به هر حال پجروهش گرفت و کسی که فکر میکنه تحت تاثیر محیط خودشه خارج از محیطش نمیتونه فکر میکنه آنچه که بر محیط میگذره افکار اعتراضی هجوهشکران را بر علیه مطالبی که در محیطش هست مطالب ناهمه هنگی که در محیطش هست مطرح می کنه مطرح می سازن بنابراین محیط کستویدنی را چیه؟ سال 1310 و 11 آوژ عدلت رزا شاهر و اوج مدرم سازی دولت رزا شاهر همون سال 1933 و 1934 بحران عجیب اقتصادی دنیاست. هست. کسری در این تاریخ با نوشتن کتاب آین نه این رو درست تشخیص داده. میکنم درست تشخیص داده به این دلیل میگم که به صورت دینی تشخیص داده. به صورت اینکه در چارچوه داخل افغاره دینی که در طول عمرش یاد گرفته با فرهنگش عجین شده در اون چارچوب داره تفسیر میکنه اون که میگذره در مورد صنعتی شدن دنیا می که در نتیجه این اختراعها در این کتابش و تبدیل هایی که ناچار در زندگی پدید آمده زحمت آدمیان روزافزون گردیده و دسته انبوه جهانیان آن سختی آن سختی و رنج را که امروز دارند، هرگز نداشتند در اینجا پیشرفت سنعتی رو قامت به با بحران نختصالی که در ممکت بوده و هم ریخته در هم پیچیده متوجه نشده که اون که در دنیا موجب بیکاره مردم شده این بحران عجیبیست خیلی معروف در واقعش مطالعه شده بنابراین ما داریم از کسری انتقاد هم میکنیم که لازمه چون در از میکنم که گروهی از دوستان بسیار عزیز از دینندگان گرامی اشاره فرموده بودن که بنده همه از کستوی تعیید میکنم نه هرانجا که کستوی لغزشی داره محبت زبی داره گفتم و بازم میگم و در آینده هم خواهم گفتم همزون <تصفح> <تصفح> <تصفح> که در سایه نوشته که در سایه فوزونی بیاندازه ماشین و تندی روز کار آنها سر انجام این نتیجه به دست آمده که در هر کشوری میلیون ها کسان بیکار گردیده راه روزی را به روی خود و خاندانشان بستن ماشین نبود در اون تاریخ راه روزی را بسته بود در اون تاریخ قحطی بود بحران اقتصادی بود بخران نان بود که از متوجه نشده و یا اینکه جدی نگرفتین مسئله رو. و برمیگرده در انتقاد از مدرنیزاسیون معتقده که ببینید همش در پایه دفاع از دین معتقده که این مدرنیزاسیون جوانهای مملکت ما رو از دین به در میبرند ببینید چی میگه و بعد میگه در سایه فوزونی بیاندازی ماشین و تندی روزفصون کارناکیین این گفتم به مرحله بعدیش میرسم میگه سرانجام سخن به دانجا رسیده که هر هرچه در او ستوده و نیکو و هر هرچه در شرق است نکویده و بد یکی هم پرده از روی مقصود برداشته و بی باکانه گفته ایرانیان باید از تن و جان و از درون و بیرون اروف شوند. این مسئله قسمت اولش دیدیه، مسئله دینه به شرق اهمیت میده برای اینکه مرکز دینه ادیان در آنجا هستند. در این تاریخ و بعد اینکه که یه گروهی پیدا شده و وابسته به این اروپاست منظورش تقیزاده است تقیزاده چنین حرفی گفته بود و اینجا هم من در بین پرانتز میکنم که در کتاب تاریخ مشروطش جا جایش از تقیزاده ریمکی یاد نکرده انسان بزرگ واری مثل کسایی ازش بعیده که با تقیزات چونین در حال مشکل در کجا بوده من هیچ وقت این مشکل رو نتونستم حل کنم به احتمال زیاد مشکل در جنگ های است که تقیزات هم در این جنگ ها. در کنار جنگ بود در کنار مردم تبیز و حقوق میگذرم محتوای بعضی از مطالبی که در این کتاب آین میگه بدین شرحه آزادی, آزادی های سیاسی و برابری های اجتماعی اروپا رو خب این برابری اجتماعی خودش قدمی بیگلوست خارج از محیط ملایی آزادی آز سیاسی بازی قدم خیلی مهمه ملایان اینو نمیپذیرن از وطن پرستی اروپایان که منجر به جنگ بین ملت ها می شود ویزاری می و باز این تا در گفتاری کسری کسری انسان وطن است. حال آنچه که در اروپا وطن پرستی بده ولی در داخل ممکت خوبه یک دیگری است که باید می در در مورد توضیح بیشتری می که نداده نه. بعد در مورد دین میگه در این کتاب در مورد دین هم سخن گفته میگه که آنچه که آدمی زاده را برگذیده برگذیده آفریدگار ساخته دین است و کسانی که دین را کنار هم همتای چهار پایان و ددانند ما میدونیم که سری هرگز دین را کنار نگذاشت ولی دین هم اعتراضات،, اعتراضات خیلی عمیقی کرده در طول تاره، طول زندگیش دلیل به خاطر دین با ماشینیزم مخالفت کرده زیرا که میگه پیشرفت کشورها کشورها است، ممکن میشه که چاشوب دین، پایه دین ضعیفتر بشه و در این باره میگه اروپا از روزی که دست به اختراق گذارده و, و چند ماکینی هدید آورده به دشمنی دین برخواسته و تیشه ها بر ریشی آسایش جهان فرود آورده تمام اینا جای انتخاد سخنان کسدی است چگونه میتوان یک از یک آدم پژوهشگر پیشرو یک چنین عبیده ای رو انتظار داشت مگر اینکه بگیم که در اون تاریخ در چهارچوب تصورات و تفکرات دینی بوده می, خود. می, خود. می یکی دیگر از مشکلاتی که با مثلا فرهنگ اروپایی داشت در می که جوانان اینا و یک مشت دلدادگان اروپا دین و پاشتایی و اخلاقه ستوده شرقیان را با هر دیده میبینند میبینند خردمندان میدانند که در بازار سود و زیان جهان این انلوخته های شرق چه و بهایی دارد بنابراین باز هم ما متوجه چه که همه مطالبی که در این کتاب مطرحه بر اساس دین حمایت هستی هراست از دین ولی درسته پیش رفتهای اروپایی به دین لطمه میزد و کسری اگه با پیش اروپایی مخالفت کرده در این کتابش تقریبا به همین دلیل که لطمه میزد به دینش و ادیان به طور کنی همین کسری در همین تاریخ در مورد زن هم به صورت ارتجایی تصور میکرد، فکر میکرد و نوشته هاشم ارتجاعیست در باری زن و زن را جنس دوم به حساب آورده مینویسد در همین کتاب می مینویسد نخست باید دید آیا زن از هر باره با مرد یکی نبیدید چه میگه آن که ما میدانیم زن هر چه ها رو باخرت باشد در برابر مرد زبون و به نگهداری خیش نتوان است است از اینجا هر زنی باید مردی را به پاسبانی و سرپرستی خود داشته و هرگز نباید زن خود سر باشد یعنی زن در چهار اختیار مرد باشد در همین همینه میگه زن مستقل نمیتونه باشه زن که باید آنجا باشد که مرد میخواهد است اصلا این کلام فاید البته ما در این تاریخ در این مورد بحث میکنیم ولی در اون زمان افکار مردم چونی دوده درست افکار مردم ولی ما میبینیم که چند سال بعد 1314 درست سی سال بد رضا شاه بالون شاه آمد که در همه هم دی ماه هزار سر چارده کشفه یک جا بکنه یکی از بزرگترین همان سعابرترین اصلاحات اجتماعی رو بکنه تفاوت این دو در اینجاست قسمی در خاتنه کتاب همین کتاب قایین مردم دنیا را نیازمنده راهنمایی مسی رهبران خردمند میدانند که از آنان به نام مردان خدامون می‌دهد می‌نویسد جهان امروز گمراه است جهانیان سر به سر راه رستگاری را پشت سر انداخته در بیابان در بیابان گمراهی به تکافو برخواستند. و بی حال خود را در نیافته دم از رستگاری می زند. جهان را امروز بیش از هر چیز راه نما مردان خدا می‌باید که راه زیر پای اونها به جهانیان را به راه را رستگاری هدایت بکند. خب از این گفتارش معلوم می شود می شود چون این تعبیل کرد که کسری در همین دوره خودش را هم می خواسته یکی از اصلاحگران به شما بیاره ولی خواهیم دید در مراحل بعدی که درست این عمری که کسری گفته ولی آن نیست که گروهی می گویند یعنی کسری ادعای بیغمبری می کرد چرا؟ برای اینکه که ما خواهیم دید در کتاب در پیرامون اسلام که پیغمبر رو نماینده خدا نمیدونه به اصطلاح مقدس تا خواهیم رسید متقلی که هر کسی خردمند باشه هر کسی درست کار باشه خداوند خود به خود او را هدایت میکنه به سوی پیغمبری ولی پیغمبر رو موجزگر نمیدونه میرسید یک مطلب دیگری همه از که باید کسانی رو در مورد اعتقاد سخیفش در مورد زن روشن کنیم مقدمه ای بر نام است که در سال 1313 نوشگه شده شخصی به نام امیری شعری سروده در 231 بیت که در این شعر تمام زن رو دستور داده که داخل اعجاب باشه زیر نفوز مرد باشه بران هر زن به زند باشه زند رو در چار جوبه قرار داده و چون کسری کس در اون تاریخ به عنوان یک فقید معروف بود از وی بیخاصی که مقدمهی بر این شعر به نویسه این شعر اینجوری شروع میشه ای سر به باغ وجود نور بخشنده چراغ بود مقدمه‌ای که کسری beyd شهر نوشته عقیده خودش رو در مورد زن بیان کرده در گذشته به طور خلاصه بیان کردیم در اینجا نسبتاً به طور مفصل‌ترم بیان میکنیم که باز خالی میگید که این عقیده قدم به قدم همان است که ملایوم می جنب میگن قرآن میگه می نویسد که به آیین اسلام دو گونه هجاب بر لازم است یکی آن که زن خود را جز از شوهر خود پوشیده دارد یعنی به دیگران که جز گردی رو و دستها از موچ به پایین پیدا نباشد و همه موهای خود را و سراسر سر و گردن و سینه و تن و ساقه ها را بپوشاند و از آرایش و رختهای زیبا در پیش مردان بیگانه سخت بپرهیزد ببینید چی میگوید زن در نهادش آرایش هست در نهادش زیبایی هست در نهادش جلوه دادن هست ببینید چه کسان را چه جوری این دین از بهترین مطالبی که انسان‌ها در درونشون وجود داره، غریزی وجود داره، مفهوم می‌کنند. دیگری آنکه زن با مردان بیگانه که جز از شوهر و پدر و برادر و برادر زاده و خواهرزاده او باشند آمیزش نکند. و چه در بزنها و انجمنها و چه در کوچه ها و بازارها با آنان روبرو نگردد. یعنی شما سنی که میره یه مردی رو میبینه از بر برگرده مگه این جامعه مال زن نیست؟ مگه آزادی نداره کم؟ مگه آزادی راه رفتن نداره؟ مگه مرد رو خورخوره است؟ چگونه است؟ یا چجوری فکر میکنم؟ میگذرم در کوچه ها و بازارها با آنها روبرو نگردد و گفتگونه نماید این است پرده پرده داری که اسلام بر زنان واجب کرده ببینید خاندان کامله و امروز کار زندگی سراسر سراسر های شرقی و غربی آگاهی داریم این به یقین می دانیم که زنان را چون این داری بهترین نگهبان است و خود راه دیگری برای پاسداری زن در پیش نیست ما باز تکرار میکنم در بخشهای آینده خواهیم دید که کسبی کس خسنش در چارچوب فکریش با محیط عوض میشه دقیقا سخنانی گفته که فاصلش با این اقایدش خیلی زیاده به پیشرفت به توی مدرنیت خواهیم اومد و در این کتاب در این شعر در این مقدمه سنت ها و فرهنگ اروپایی را که در ایران رو به توسعه بود موجب پیدایش بیبندباری زنان و خانواده ها دانسته ادامه میده که در این سالهای آخر که دست دست ایرانیان به اروپا رفته و برمیگردند و همیشه در سینماها چگونگی زندگی غربیان نمایش داده می‌شود. کسانی از جوانان و یا پیران بدتر از جوان به حوض افتادند که در ایران نیز زنان با مردان آمیزش های بی باکانه نمایند و در هر بزم و انجمنی دختران و زنان آراسته و پیراسته پهلوی مردان بنشینند و بازار کامرانی و کامگزاری را جرم گردانند و به راه کامگزاری به روی آن کسان باز باشد و در راه چون این آرزو و هوس است که پیاپه پی زنان را به آزادی می و دم آدم دختران را به پرده دری بر می نوشته به دختران درس عشق بازی می آموزند. و شهرها سرود زنان را به بعضهای رخص و بدمستی راه می نمایند گاهی از کسب آزاد برای زنان تخن می کنید حتی کسب آزاد رو هم برای زنان تخن گاهی از کسب آزاد برای زنان تخن می گاهی در نکوهش پردداری و پردداری چه کامه می سراین چه می کار می و یک مقصود بیشتر ندارند و آن در, آمد، در آمدن زنان است به های کامگذاری و رقص و بدمستی دیگر هیچ اینان دشمن نامنیک و آبروی زنانی باشند و با این افسونها بر بدبختی زنان میکوشند بنابراین تأکید کردم، تکرار کردم و باز نیاز به تکرار بیشتر نیست در این تاریخ از دید فکری، یک فقیه متحکر است که چیزی بهجز شاشوب دین خودش که هم از نظر فرهنگی هم از نظر خانواده جنتیکی هم از نظر محیط زندگانیش او را احاطه کرده بود به اون به چیز دیگری فکر نمی کند از جلسه جلسه بعدی ما اون راه رو ادامه خواهیم داد و تعملات کسدی رو بیشتر و رسی کرد روز شما عزیزان بخیر خیلی